سپاسگزارم که با ما همراه هستید. خبرهای دانمارک در هفته‌ای که گذشته رو به سم شما میرسونن. با ما همراه باشید. خبر اول رو از روابط دانمارک و ترکیه به سمع شما میرسونم. دانمارک سفیر ترکیه را احضار میکند. وزیر امور خارجه دانمارک اعلام کرد سفیر ترکیه در کپنهاگ را برای توضیح در مورد تهدید اطبای دارای تابعیت مضافه ترکیه دانمارکی منتقد رجب طیب اردوغان رای جمهوری ترکیه را احزار می می‌کند. یک کودک از هر پنج کودک متولد شده در دانمارک خارجی تبار است. در یک گزارش جدید مرکز آمار دانمارک آمده که سال گذشته بیش از 20 درصد از 61614 کودک متولد شده در دانمارک از مادر مهاجر یا از نسل یک مهاجر بوده است. این رقم نسبت به آمار 2007 که 13.5 درصد بود، افزایش قابل توجهی را نشامید. بعد از دانمارکی‌های اصیل در این کشور، زنان سوری و ترک به ترتیب بیشترین بچه را به دنیا آوردند. هزینه مالی تحمیلی بر دولت دانمارک از سوی مهاجران غیر غربی و فرزندان آنها سالانه در حدود 15 تا 20 میلیارد کرون برآورد می‌شود که معادل تقریبا یک درصد تولید ناخالص داخلی می باشد اجتماعی و حزینه های تحصیلی که معاجران غیر غربی و فرزندانان ها دریافت می کنند بسیار بیشتر از پرداخت آنها به صورت مالیات به دولت می باشد مقام های دانمارکی همانند سال گذشته نوروز را تبریک نگفتند در سال گذشته و سال جدید هیچ از مقام های خورد و کلام دانمارکی پیامی برای نوروز نداده است با وجود سکوت مقامات دانمارکی نسبت به نوروز ترازمی ترازامی نخست وزیر انگلیس و شمار دیگر از رهبران جهانی سنت سخن گفتن با مردم و حتی رساندن پیام خود را برای مقامات دولتی را ادامه دادند ترامپ رئیس جمهور آمریکا نخست وزیر نروژ و سوئد نیز امسال برخلاف سنت قبلی پیام تبریک نوروزی نفرستادند تیم ملی فوتبال ایران در شهر کلدینگ واقع در یولند دارمارک آمد تیم ملی فوتبال جوانان ایران که پنشمه گذشته برای برپایی اردوی آماده سازی راهی دارمارک شده است دوشنبه بیس مارس در اولین دیدار تدارکاتی برابر تیم کلدینگ قرار گرفت ملی پوشان جوان ایران تحت هدایت امیر حسین پیروانی حضوری در جام جهانی 2017 خواهند داشت که با تیم های ملی کره جنوبی، پرتغال، زامبیا و کاستاریگا همگروه هستند که در 25 اردیبشت 96 این بازی ها انجام خواهد شد. تیم فوتبال جوانان ایران مقابل تیمی از دانمارک قرار گرفت که همو تیم کوردینگ بود که با تساوی بدون گل به پایان رسید. یک موفقیت بزرگ برای جامعه ایرانی مقیم دانمارک برای اولین بار پس از سالها پخش ای برنامه چهارشنبه سوریه کپنایک از تلویزیون ملی دانمارک پخش شد امسال برای نخستین بار پس از 35 سال جشن بزرگ چهارشنبه سوری ایرانیان کپنایک به صورت مستقیم از تلویزیون ملی دانمارک برای چند دقیقه پخش شد هزاران نفر در سراسر کشور از آلبرگ در شمالی ترین نقطه دانمارک تا شرق و غرب یولند و کوپنهاگ در جشن‌های چهارشنبه سوری شرکت کردند. لارس راسموسن می‌گوید بن علی بلدریم نخست وزیر ترکیه فعلا به دانمارک نیاید دانمارک به همتای ترکیه خود پیشنهاد داد به دلیل تنش اوضاع ترکیه و هلند فعلا به دانمارک سفر نکند. نخص وزیر دانمارک از ایشان خواسته که بلت بحرانی که وجود دارد فعلا به دانمارک نیاید دلیل اصلی آن خطر و ناامنی برای ایشان و بی و امنیت عمومی اعلان شده انگرستوربیک قانون محدودیت زندگی برای پناهجویان اخراجی را به تصویب رساند یعنی پنجامی قانون را و برای پنجاهمین قانون سخت‌گیریانه خود جشن گرفت و کیک موفقیت خود را بدون حضور پیاگسکو سرو کرد اما دادگاه دیوان عالی این کشور قانون اینگرسپیک بر... ایستبرگ را لغو کرد و پناهجویان کمپ می می‌توانند همانند همه به عنوان یک انسان حق و حقوق اولی انسانی خود را داشته باشند و تا حدی به زندگی خود ادامه دهند آخرین خبر از نادیا ندیم افغان بازیکن سال فوتبال زنان دانمارک شد دوشنبه 20 مارس 2017 نادیا ندیم دختر افغان موفق شد به با عنوان بازیکن سال فوتبال زنان دانمارک انتخاب شود نادیا ندیم که عضو تیم ملی زنان دانمارک و تیم پرلند امریکا می میباشد بازیکن بیست و ساله موفق شد عنوان بازیکن سال فوتبال زنان دانمارک در سال 2016 2017 را کسب کند نادیا که در 65 بازی برای تیم ملی فوتبال دانمارک موفق شده 19 بار گلزنی کند از بین هزاران رای که توسط کانون هواداران فوتبال دانمارک توانست بیش از 50 درصد آرا را به خود اختصاص دهد و به عنوان بازیکن سال فوتبال زنانه دانمارک انتخاب شد ما هم به نوبه خود این موافقه ارزشمند را به ایشان تبلیغ میگوییم تندرستیتون پایدار عزیزم